اصل سوم در آن زمان یحیای تعمید دهنده در بیابان یهودی ظاهر شد و تعلیم داده میگفت: توبه کنید زیرا پادشاهی آسمانی نزدیک است یحیا همان کسی است که اشعیای نبی درباره او میگوید: مردی در بیابان فریاد میزند، راه خداوند را آماده سازید و مسیر او را راست گردانید لباس یحیی از پشم شطور بود و کمربندی چرمی به کمر داشت و خوراکش ملخ و اصل صحرایی بود مردم از اورشلیم و تمام یهودیه و نواحی رود اردن پیش او میآمدند و به گناهان خود اعتراف میکردند و در رود اردن از او تعمید میگرفتند وقتی یحیا دید بسیاری از فریسیان و صدوقیان برای تحمید آمدن، به آنان گفت، ای مارها چه کسی شما را آگاه کرد تا از غضب آینده بگریزید، پس اعمالی را که شایسته توبه باشد انجام دهید، در این فکر نباشید که پدری مانند ابراهیم داریم، بدانید که خدا قادر است از این سنگها برای ابراهیم فرزندانی بیافریند. اکنون تیشه بر ریشه درختان گذاشته شده و هر درختی که میوه خوب به بار نیاورد، بریده و در آتش افکن خواهد شد. من شما را با آب تعمید می دهم و این تعمید نشانه توبه شماست، ولی کسی که بعد از من میآید از من تواناتر است و من لایقان نیستم که حتی کفش‌های او را بردارم، او شما را با روح القدس، و آتش تعمید خواهد داد، او چنگال خود را در دست گرفته و خرمن خود را پاک خواهد کرد، گندم را در انبار جمع می کند، ولی کاه را در آتش خاموش نشدنی خواهد سوزانید. در آن وقت، عیسی از جلیل به رود اردن پیش آمد تا از او تعمید بگیرد. یحیا سعی کرد که او را از این کار منصرف نماید و گفت، آیا تو پیش من نیایی؟ من احتیاج دارم از تو تعمید بگیرم. عیسی در جواب گفت، بگذار فعلاً اینطور باشد، زیرا به این وسیله احکام شریعت را به جا خواهیم آورد. پس یحیا قبول کرد. عیسی پس از تعمید فوراً از آب بیرون آمد. آنگاه آسمان گشوده شد. و او روح خدا را دید که مانند کبوتری نازر شده به سوی او میآید و صدای از آسمان شنیده شد که میگفت این است پسر عزیز من که از او خوشنودم